بازای ساغیا که حبا خاق خدمتم مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم زنجا که فیض جام سعادت فروغ توست بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم هرچند غرق بحر گناهم ز سد جهت تا آشنایه شدم زهل رحمتم ایبم مکن برندی و بدنامی ای حکیم کین بود سرنوش ز دیوان قسمتم میخور که آشغی نبه کسب بست و اختیار این موهبت رسید ز میراس فطرتم من که از سفر نگزیدم به عمر خیش در عشق دیدن تو هوا خواه قربتم در یاب و کوخ در ره من خسته و ضعیف، ای خضر فی خجست مدد کن به همتم دورم به صورت از در دولت سرای تو لیکن به جان و دلز مقیمان عزرت حافظ به پیش چشم تو خواهد سپورد جان در این خیالم ار بدهد عمر محلتم